سرور وشواج اشنادره احوره مزدا اشم واوو او استی اوشتاف استی اوشتا احمایی هیادشایی وحشتای اشم اشم واوو او استی اوشتا استی اوشتا احماییی هیادشایی وحشتای اشم اشم و وحشتم اوشتاستی، اوشتا احمایی، یدشای و اشتایشم فروران مزد یسنو، زرطوشتریش، ویدع و اهور تکیشو در بامداد گاه هاون چنین میخوانیم هاونه اشعون، اشعه رتف، یسناییچه، وهماییچه شناؤد رایچه فراسسته یا ایچه سوینج هیه ویسیایچه آشاعن آشاهرثه یا سنایچه وحماایچه خشناؤد رایچه فراسسته یا ایچه در نیمروز گاه رapidwin چنین میکنیم rapidwinای اشعون اشه رتوه یسناییچه وحماییچه شناوت رایچه فرث فرادت فشو زنتوماییچه اشعون اشه رتوه یسنایچه وحماییچه شناوت رایچه فرث استه یئےچه پس از روز گاه وزیرین، وزیریای اشاآونه، اشیرت و یاسناایی چه وحماایی چه خشناوترایی چه فرس چه فرادت ویرایی دخیو ماایی چه اشاآونه، اشیرت و یاسناایی چه وحماایی چه چه, چه در شب گاهی اییی سروترم رم، اییی سرود رم آیی، اییی کی آیی، آشانه آشای رطف یاس نائیچه، وحمایچه، شناوترایچه، فراسستا فرادت ویسپام، هو جی آیی تیه، زرادوش چو تماییچه. اشعون اشه ردو یستنایچه وحمایچه شناوترایچه فرسسته یعیچه درگاه اوشهن پس از نیمشه اوشهینای اشعون اشه ردو یستنایچه وحمایچه شناوترایچه فرسسته یعیچه برج یای، نمانیا چه هشانه اشیرت و یسنایی چه وهمایی چه قشناترایی چه سراوشه ها. اشیه ها. تخمه تنو منتره درشی دروش آهوریه قشناترا یسنایی چه وحمایی چه شناترایی چه فراستا یه چه یتا اهو ویریو زاوتا فرا ممروته اتارتوش اشاد چید حچه فرا اشوه وید وام راوتو اهونم ویریم تنون پایتی اهونم ویریم تانون پایتی اهونم ویریم تانون پایتی یتاهو ویریو اطارتش اشا چیرهچا وانگهے اوش دزدا مننگهو شعوتر نام انگهے اوش مزدای قشترمچا اهورای یم درگو بیو ددت واسدارم کمنا مزدا موییت پایوم داد. هیت ما درگواو دیدر ا ایننگه انیم توحمات آترست شا مننگ هست شا یا یاو شیو تناش اشم تراشتا اهورا تاموی دانستوام د دا فراو که جاتوا پوی سنگها یوی هنتی چیترا موی دام احوم بیش راتوم چیشدی ات هوی وہو سراوشو جنتو منانگها مزدا احمائی یحمایی وشی که چیت ها تنو دبیشینتت پیری مزداز چه آرمی تیش چه سپنتست چه دروش نسه دعیو چیتر نسه دعیو فرکشت نسه دعیو فردائیتی اپدرخش نسه اپدرخش دواره اپدرخش وی نسه اپا خذره نس یه ما مرن چینیش دیا اثاو است و ایتیش اشهه نمس یا آرمیتیش ایژا چا نمسشا یا آرمیتش ایژا چا نمس یا آرمیتیش ایژا چا یتاهووریو دبار خاندن یسنم خواندن وحمم چ اعوجس چه, اوجست چه آفری نامی سروشه عشیه تخمه تن و منطره درشی دروش آهوریه هی. عشم و هو یک بار خاندن احمایی رعیس چه نسجه. احمای نسجه احمایی در و دروتات تنو وزد وره احمایی تنو ورطرم احمایی ایشتیم پورش، واترام احمای آسناب چیت فرزاینتیم احمایی درقام درقو جیتیم احمای وحیشتم احوم اشعانام راو چنکم ویس بو خواترم عشر ام وایش با با از انام هزنگ را ویش از انام بای بر بیش با از انام هزنگ را ویش از انام بای بر بایش از وایش اوشتا همائی هیدشای و اشتایشم جسام اوانگه مزدا جسام اوانگه مزدا جسام اوانگه مزده امه هوتاشته هو ذه هو ورت رقنه اهور ذاتهه ونین تیاز شه او پرتاتو تواشه خداته زروانه اکرنه زروانه درقو خداته عشم و هو یک بار خاندن. زدن نسوش زدار دیو درود پاکی تن روان قیش زدن نسوش زدار دیو درج پاکی تن اشوی روان خیش. زدن نسوش زدار دیو درج دروج تن اشوی روان خیش. عشم و هو و اشتم اوش استی، اوشدا استی، اوشدا احمایی، هیدشایی و اشتایی عشم.